بسم الله الرحمن الرحيم موتلات تمام شدن بس بسيديم بمحموز فصل في المحموز فصل در روطبا محموز حكم المحموز في تصاريف فعله كحكم الصحيح حكم محموز در تصاريف فعل بمعنى للصحيح هست لأن الحمزة حرف صحيح كل حمزة حرف صحيح هست بدليل أنك تمام حركات رو ميبازلت لكنها قد تخفف إذا وقعت غير أولا لكن قاهم وغير مخفف مشوات جهت تخفيف حصف مشوات لما در ابتداء واقع نشع در غير الآوال لأنها براي إنك حرف شديد من أقص الحلق حلق. چون هر همزه از انتهای حلق بیرون میاد، مخرج همزه از انتهای حلق هست. حروف ح، از حروف حلق و انتهای حلق. فتقول ما نند آملا یعملو کنصریانصرو. آملا یعملو بر وزنه نصریانصرو. آملا یعملو محموز الفاحس. فاول فیلش هر حرفه همزه است. و امر آمرش چی میشه؟ امروز میشه از مظاهره درست میشه از تعملو اگر بخواییم امروز درست کنیم تارو که برداریم میبینیم همزه ساکن است پس همزه وصل میاباریم اینولفل چون زمه دارد همه رو زمه میشیم زمه میدهیم میشهد اعمل قاعده داریم که هرگاه دو همزه با هم جمع شوند همزه دوم هم تبدیل به حرفی میشهد که فعل چه حرکتی دارد اگر فاعل فعل داشت همزه دوم تبدیل به واو می شود اگر فاعل اگر همزه اول فتحه داشت همزه دوم تبدیل به الف می شود و اگر همزه اول کسره داشت همزه دوم تبدیل به یا می شود پس اومل می شود اومل و الامر اومل به قلب الهمزه واو لأن الهمزتين إذا التقت في كلمة واحدة زمانك كدو همزة در يك كلمة جام شوان ثانيتهما ساكنه ودوهومي ساكن باشد وجب قلبها بجنس حركة ما قبلها واجبا سك همزة دوهومي همزة ساكن دوهومي بجنس حركة ما قبل تبدیل شود يعني اگر حركة ما قبل زم بود تبدیل بزم شود ماننده و امل که میشواد اومل اگر فتح بود تبدیل به الف میشواد که اعمنا که میشواد آمنه و اگر کسر بود تبدیل به یا میشواد همزه همزه دومی ماننده ایمانن که میشواد ایمانند خودش آورده که امنه در اصل بوده اعمنه اومنه مجهول آمنه هست در اصل بوده است اومنه که شده است اومنه ایمانند که مصدر هست شده است ایمانند چون همزه دومی ساکن بوده تبدیل شده به جنس حرکت ما به جنس حرکت ما قبل. زمه نصف وابست فتحه نصف عرب و کسر نصف یا پس اگر همزه دوم ساکن باشد و حرکت همزه اول فتحه باشد همزه ساکن دومی تبدیل به الف و اگر همزه اولی کسره داشته باشد همزه دومی تب تبدیل به یا و اگر زمه داشته باشد تبدیل به و می شود که دو سه بار تقریبا توضیح داده شد فا امکانت الول همزه توصل تعودو ثانیتو همزه تند الوصل حالا ما اینو اگر در ابتدا باشد میگه اگر همزه اولی همزه وصل باشد. همزه وصل در ابتدای کلام خونده میشه ولی در وسط خونده نمیشه. میگه اگر همز اولی همزه وصل بود، در وسط کلام همزه وصل خونده نمیشه، خب همز دومی رو ما تبدیل به چی کردیم؟ تبدیل به جنس حرکت همز اولی همزه وصل حالا که همز وصل خونده نمیشه میگه همز دومی دیگه، دوباره به چیهاش برمیگرده زمانی که در وسط کلام واقشان تا او دو ثانیه تو همزتن اندل وست دوباره چواب باشد چیا چی الف دوباره تبدیل برمیگرده تبدیل به همزه میشه ازن فتحه ما قبلها زمانی که ما قبلش فتحه داشته باشه مانند الهده تنا الهده تنا در اسل بوده ای تنا ولی چون اینجا در وسط هست شده الهده تنا و من هم من یقول او که اسلش بوده ای ذن لی و از زمله فلیؤد لذه تمنه که در اسل بوده او تمنه وحذفت هم حم... تو في خذ و کل و مر حمزه در مثال های مانند خذ کل و مر حذف شده ساده ترین توضیحی که بدین ك... بخاطر اینکه به خاطر استعمال علا غیر القياس لکثرة استعمال خودش گفته این حف قیاسی نیست به خاطر تخفیف هست زیاد استعمال شده گفته علتش زیاد استعمال بودن هست. پس در خود کل و مر در امر حمزه هست شده. در ماضی و مزاره حس نیست اخذ یخذ اکلا کلو امر یم او. فقط در امر حذ هست در این ستافه. و قد و مر على الاصل انندلو است میگه امر امرمر دستور بده بر اساس اصل میاد هنگامی که وصل باشد مانون ومر و مر و مر اهلک به صلاتی که اینجا حمزه دارم مر نیست اگر مر بود یه شد و مر اهلک به صلاتی اما با حمزه اومده است و مر اهلک و اذ ذ باز محمز الفا هست ولی بر از فع هست، ح یهنی او لام هست ذرذری بود این دو تا مانند ذرره اذری بود هستن بر از فعر یافلو وال ایزر در ذ ذرو امر چی میشه ایزر میشه چرا از تظ رو درستش می تا رو در میداریم همزه ساکن داره ناچاریم همزه وصل بیاریم همزه وصل میاریم از آن جایی که در تعذیر و عین کسر داره همزه رو کسره میدیم میشود ا زیر که قاعده رو در قبل توضیح دادیم هرگاه دو همزه با هم جمع شوند، همزه اولی کسره داشته باشد همزه دومی تبدیل بیان میشود میشود اعه زیر ادوب یع دوبو ککروم یکرومو این هم هست بروند هست. او الف امر ادوبا یع دوبو اودوب هست چرا؟ یع دوبو از تعدوبو که درست کنیم تا رو بر میداریم چون همزه ساکن هست همزه وصل می آوریم با ساکن در عروی خانده نمی شود همزه وصل رو که بیاریم از آنجایی که این الفل زمه دارد همزه رو زمه می داریم می شود اودوب. که بر اساس قاید قبلی همزه دوبوی تبدیل به واو می شود چون همزه قبلیش زمه داره پس او دوب و سأل یسألو کمان عیم او بر وزن فعلا یفعلو هست امرش میشه می یسألو اسأل و یا به تخفیف جائز است با تخفیف سال یسالو که مرش می سل چطوری؟ تسالو ترکبر می داریم حرف بعدی حرکت دار نیاز به همزه واسی نیست لاملفل و ساکن میدهیم میشود سال دو تا ساکن یک جا جنف شدن حرف اللح هست میگردد که علیف شده هست در حال حاضر میشود سال سال بنی اسرائیل پس هم میشه گفت اسال و هم سال و آب یعوبو آب یعوبو هم و ساقه یسوعو که هم اجواف هست و هم آب یعوبو هم اجواف هست و هم محموز ساع یسوعو هم محموز اللام هست و هم اجواف جفتشون مانند ساله یسولو خب اینا که دیگه صرفشون اونایی که هم موتلند و هم اجواف نگاه میکنیم چه نوعی اجوفی هستن مثل همون چه نوعی اموتلی ام هستن مثل همون موتل صرف میشان کسان یسولو جا ایجیو مانند کال یکیلو هست اسم فائل یسوو سا ایسوو میشوند سائن در اس بوده سا و اون فائلون فائل دیگه ولی ما در اجوف قبلن خوندیم که حرف الله تبدیل به همزه می شود تصاوه اون و جای اون می شوند. جای جا اون سا با دو همزه که دومی تبدیل به یا می شود می شود سا, او جا جای سا و جا ولی از اونجا که دارن و جا زمه بر یا سنگین میشه. ساییون یا دیگه زمه داره یا رو داریم ساین جاین یا ساکن هست نور ساکن هست یا برداشته میشه تا ساکن که جمع شوان هر فعله برداشته میشد میشود ساین و جاین جا که این در بحث ناقص توضیح دادیم مثل رام رامیون که میشد رامین داعیون که میشد دائم در حالتی که تأمین داشته باشد اصایعسو مانند دعاید او اطایعتی مانند رمایرمی محبوض نیست صاحق سالم هست مگر این که هم باشد مثل اطایعتی که دقیقا مثل رمایرمی صرف میشه لذا ایده دیگه یاد آورد نمی امره اتا یعتی از تعتی که انو درست کنیم ته رو بر میداریم همزه بعدی حرف بعدی ساکن هست همزه وصل می آهاریم میشود اه تی یا همه از آخر هست میشه چون ناقصه دیگه یعتی از تعتی که درست کنیم بس میشه اعتی قائدی که قبلا توضیح دادیم میشود شود تی و به اینو من یقول تی تشبیها لهو به خود و بعضی از عرب ها امر رو تی خالی به کار برده هن. از این زاویه جهت تخفیف همزه رو برداشده هند علامت مزاره رو حذف کرده هند. فقط تی مونده و از آخر هم یا برداشتیمشتیم ناقص هست امرش مبنی بر حذف حرف الله هست فقط تی باقی مونده تشبیه اللهو به خود شباهت به خود و آ ی ای مانند وقایقی هست امرش هم هست ای مانند وقایقی امرش بود قی او یعوی این که البته مستدر در اصل او ین بوده و و یا با هم جم شدند اولی ساکن هست هرگاه ای رو در بحث ناقص خوندیم و در لفیف خوندیم هرگاه و و یا با هم جم شوند در ناقص خوندیم که در نفیف هم کار داشت. هرگاه دا واو یا با هم یک جا جمع ولی و ساکن باشد واف افت تبدیل بیا می شود پس اوا یعوی این مانند شوایشوی شیعن که در اس بوده شو شوی شویان که واو یا با هم جمع شده شده از شیعن این هم چونین هست امر اوا ای وی هست در اسبود اعوی که شده ای بی آین آ مانند در آ آ هست و ها کذا قیاس آ و را آ آ هم بر اساس قیاس شنین هست ر آ بر اساس قیاس مزارش می شود یر آ اما عرب این ام حمزه رو حسب کردن در مزارش رآه مزارش رو گفتن یا یراه از وسط همزه رو حذف کردن عرب خلن فقالو یارا یرایانی یراونه ترا ترایانی یراینه مثل ناقص سرفشه ترا ترایانی تراونه تریانی ترایانه اراه نرا که قبلا گفتیم تقدیر اونای که به ظاهر شبیه همان تقدیرشون با هم متفاوت است و اتطفقه فی خطاب المعنسی لفظ الواحده والجمعی میگه در ترینه که مفرد موانس حاضر هست با ترینه که جمع موانس حاضر هست دو لفظ کاملا مثل حمد. اللحاظه ظاهری اما اللحاظه تقدیری فرق میکنند مفرد موانس بر وزن تفینه هست یعنی این الفیل و لام الفیل حصف هستند در از هست توره تو را تو تر ا در اصل, در اصل هست که هم الالف هست شده و هم شده شده مجهولش هست در هم هست شده و هم شده است تر در مفرد موهنس تر اینه اما در جمع موهنس بر از تفل نه هست بر از تفل نه یعنی این الفل هست شده اما هم به شکل ظاهری مفرد موانس ترینه هست جمع موانس هم ترینه است. که اینو البته در ناقص هم گفتیم الفاظ اللحاظ ظاهری مثل اما اللحاظ تقدیری متفاوتند لكن وزن الواحده تفینه وزن واحد تفینه هست و وزن الجمعی تفلنه هست پس مفرد موانس حاضر بر وزن تفینه هست اما جنب الوزن التفنهت واذا امرت منه قلت على الاصلي ارعه اما اجل بخي امره يراره دروس كوني در اسمش ارعه ك ارعه معنى در رعا يرعه كامريش مش ارعه انهم رعا يرعه ام در اسمش ارعه ارعه وعلى الحفف بر اساس اصل میشه ارعه اما همزه رو که حس کنی ري فقط ر باقی میونه ویلزومه ها او فی الوقف و در حالت وقف لازم است که هابش بدی رح ریا رو ري ری ریا ری این هم صرفه را یا را امرش میشه رح الاخر اگر با نون تأکید رح رو صرف کنیم اشاید رینا ریانی رونا رینا رینان نی این نون تأکید سقیله بود اما با نون تأکید خفیفه فقط سسیقه میمونه چون مسن... مسنه ها و جمعه انس با خفیفه نمیشند درست نمیشند میشه رین رین رون رین با تأکید خفیفه چون مسنه ها و جمعه انس هستونند اما اسم فاعل اسم فائل میشه رائن در اسم بوده رائیون مثل دائیون دقیقا که توضیح شدادیم دادیم از اونجا که تنوین بر یا ثقیل هست برش میداریم یا حس میشه میمونه رائن را یعنی رأؤنا كده أسبد الرائيونا، حريشون، رأي رائيان الرائيونا كمشي راؤنا، معنن الراعي الراعيان الراعونه، تغيقا مثل همون هاس، واسم مفقول وذاك مرئي واسم مفقولش مشي مرئي مثل همون محدي كمرعيد اینا رو در ناقص خوندیم و بنا و افعال منه مخالف لی اخواتی و اگر این رعایر آ رو به بنای افعاله ببرین به باب افعال ببرین با بقیه اخواتش کاملا مخالف هست در باب افعال هم در ماضی هم در مزاره و هم در امر همزه حمزه میشه ولی در باب مجردش در ماضی حسف نمیشه را در رعا و در امر حس بود در مضارع ار حث بود اما در ماضی حس نبود اما در باب افعال در هر تا حث میشه رعا را در باب افعال ببریم در اصل میشود ار افاله ارایا ارایا که میشه اراه که میشه ار اه ولی همزه حث میشه در ماضی و مضارع و امر میشه عرا یوری مصدرش میشه اراعتن در اسم بوده اراین همزه به ما قبل داده شده و همزه حس شده و در آخرش تای عوض اومده شده است ارایتن پس مصدر میشه اراعن اراعتن و ارایتن مصدر باب افعالش و اسم فائلش میشه مورند که در اسم بوده مور ایوند مف ایلون افعل یفعیلو مفعیل مر ایون که مثل رائن رائیون مثل داعین زمه بر یا سقیل بوده زمه که حرف شده یا هم به علت التقای ساکنین هر شده فقط همزه بوده مر مریانی مرونه که اینجا هم مثل داعیونه حس شدنام دا الفعل موریتون موریتانی موریاتون این بود از اسم فائل و اسم ما فولش میشه و ذاک مرن مرايانی مراونا مراتون مراتانی مراياتون یعنی قواعدی که روشن می‌داشت بخاطر اینکه ناقص هم این ارآ رآ هم محموز است و هم ناقص قواعد ناقص درش اجرا میشه اما لازه همزه محموز ها مثل سالم ها هستند جز بعضی کلمات که درشون تخفیف میاد یکی از اونها همین رعا بود که در مجردش در مزاره و حس حصف میشد همزه ولی در باب افعالش هم در ماضی هم در مزاره و هم در امر. حالا در امرش میشه چی؟ ارا یوری از طوری که بخوایم امر رو درست کنیم، ما قبلا ها گفته بودیم باب افعال همزششون اصلی بوده در امر بر میگرده. لذا همزه باب افعال کلن فتح داره. از اون به خاطری که این همزه باب افعال اصلی هست، برکه بگرده میشه اری. از آخر حرف عله هست میشه اری، اریا، آر ارو، اری، اریا، ارینه پس باب افعال در رای را که ماضیش عرایوری هست عمرش میشه اری اری اریا اورو اری اری ارین تأکید رو که میشه اریان اریانی ارون ارین اریانی ارینانی این بانون بانونه تأکیده سقیله بود اما اگر با خفیفه بخوایم سرفش کنیم میشه اریان ارون ارن. با نه که بخواد سرفش کنیم از توری میشه لا توری این لای نه مجزون میکنه و فعل ناقص هرگاه مجزون شد حرف فعله در اون سیبه هایی که التقاء ساکنه پیش میاد حس میشه لا توری لا توریا لا تورو، لا توری لا توریا لا تورینا بانون تأکید سقیله یاد در میگرده چون اینجا دیگه التقاء ساکنه پیش نمیاد لا توریان نه لا تور توریان تورن نه، لا تورن نه، لا توریانی، لا تورینانی. مهموز که به باب افتعال برم و تقولی فی افتعل من المهموز الف. اگر مهموز الف باشه و به باب افتعالش ببریم، دیگه حمزه تبدیل بیا می شود. چرا؟ چون افعال حمزه کسره داره. حمزه خودی فعل داره همزه فعل ساکن هست همزه باب افعال کسره قبلا خوندیم همزه دومی اگر ما قبلش مکسور باشد تبدیل به یا می شود اعتال که می شود ایتال مانند اختاره ایتال اختاره افتاره. افتعله که از اون جایی که عجوه فن بوده تبدیل به علف شده ایتالا طلا در سب بوده اطلا همانطور که ایتال در از بوده طاله شده ایطاله قاعده قبل گفتیم ای طلا هم در از بوده که حمزه تبدیل به یا شده به دلیل مکسور بودن ما قبلش مانند اقتضا البته این نقطه رو باید بگویم اگر میخواهید واقعا محمز رو یاد بگیرید در کتاب الفیه که میلیید چرحش در بحث تکمله اونجا خیلی با زبان ساده و خیلی کوتاه توضیح داد. توصیه می شود که برای یادگیری محموز اونجا بریم. اصل در محمز این هست که محموز مثل سالم است مگر فعل هایی که اینجا نامشون برد فعلای مشخص و معدودی که درشون به خاطر تخفیف حسده مثل خود کل، سال مثل را در مزارش هست داریم یرا و در باب افعال ارایوری و عریق امرش هست موفق و پیروز باشید